در کوچه باد می آمد. در کوچه باد می آمد. و من به جفت گیری گلها می اندیشم. به گونچه با, ساخ با ساخ های, های لاغر کمخون و این زمان خسته مسلول و مردی از کنار درختان خیس میگذرد، مردی که رشته های آبی رکایش مانند مارهای مرده از دو سوی گلوگاهش بالا خزیده اند. و در شقیق های منقلبش آن هجای جا جار تکرار تکرال میکن سلام سلام سلام سلام من به جو گل ها می, می سلام. من آرشم و اینجا رادیو هجده بنفشیه که به خاطر یه جرقه به دنیا آمد اصلا همه ماها ها به خاطر یه جرقه به دنیا آمدیم اون جرقهه اساسا و در بیشتر مواقع رابطه مستقیمی داره با بالا رفتن درصد بعضی هرمون در فکر و بدن مادر پدرای ما یه شبی توی خونهی روی یه خوابی یه ما چی اومد یه ما چی رفت. کم کم کار بالا گرفت و بعدش ما شدیم ما به کتب علوم دوام دبستانتون برگردین لطفا اونجا که اون مسلس و کشیده بود مثلث آتیش اکسیژن سوخت و حرارت حالا بعد سالها متخصص اومدن گفتن که نخیر یه عامل چارمی هم هست یه عامل چارمی که مثل چسب قطری نامردی میمونه که کافیه که قافل بشی و بزنه زار و زندگی تو به هم بچسبونه البته نه با این شدت بار معنایی منفی که بند مثال زدم. این عامل چارو ما اومدم براش یه اسم باموسما انتخاب کردم به نام واکنش های ناشناخته. شما همون چسب و ای صداش کنید لطفا. یا اصلا جرقه؟ اصلا تو مثال بچه درست کردن این جرقه میتونه تیکه جاری نوامه عروس دایی عموممد آقا باشه به خانم که اتمن ایرادی داری که بچه نمیاری یا شایدم هم 120 هزار تومنی حقوق آقا به ازایی وجود هر بچه اضافی. ما چوبوسه و بغل و فلان و بهمان و هم ازلوه و مثال اولین. گاهی وقتا زندگی برای جلو رفتن و ادامه دادن و شاد بودن و اصلا بودن نیاز به یه جرقه داره. یه با یک روش این اپیزود تقدیم میشه به تمام موجزه هایی که برای اومدن وسط و غیر دادن تو زندگی ما نیاز به یه زیرلپزی چند ده میلیارد خدایی دارن بولم بالا The Sahara desert says it all It's America All oh, God's creations great and small سرد گله ماهیا را افتادن شناکنون برن گردش آخه برای ماهیا اون زیر آب که هوا سرد نیست اون وسط یه ماهی کوچولو به سرش زد که بره سطح آب کلشو بکنه بیرون این کار برای ماهیا هم اون داره که پریدن از فاصله 200 متری به واسطه یک کابل کشی برای ما اصلا هم. اصلا همه کارهای پر حیجان دنیا خطرناکه ماهی کوچولو هم رفت روی آب کلشو کرد از آب بیرون و پشت سر اون باقی ماهی‌ها هم پیدا کردند یکی یکی کلشون رو عذاب کردن بیرون مای بزرگ هم که انگار دلشون میخواست برن ولی موجودات وقتی بزرگ میشن عقل معاش و باقی قضايا فقط بهشون یاد میده حسرت بخورن و هرس بخورن و جوش بزنن و سراخرم سکته کنن و بپکن و بمیرن بذار رو راحت کنم. بیشتر این سنگ قبره رو که کنار بزنی یه تله حسرت کرم خورده در پون. نه یه مثلا آدم م하이 بزرگ‌ها از اون بر بالبال بال زدن که نکنین این کارا رو، ایب بده، بد فلان و خطرناک و بهمانه و بیزار. ولی مهای کوچولا انگار که حال کرده باشن، هی ادامه دادن. توی ثانیه همه چیز سیاه شد. همه چیز یهو تموم شد. دستانه فصلی سرد در محفل ازای آینه ها و در اجتماع سوگوار تجربه های پرید رنگ و این قروب بارور شده از دانش سکون می شود به آن, آن کسی که می رود اینسان صبور، سنگین،, سنگین سرگردان فرمان ایستاد. چگونه می شود به مرگ گفت که او زنده نیست او هیچ وقت زنده نبوده است، در خوچه باد انزوا در با پیر پیره که سالت می‌چرخند و نرد بام چه ارتفاع حقیری دارد آنها تمام ساده یک قلب را با خود به قصر قصه ها بردند و اکنون دیگر دیگر چگونه یک نفر به رخص برخواهد خواست و گیسوان کودکیش را در آبهای جاری خواهد ریخت و سیب را که سرانجام چیده است و بویده است در زیر پا لگت خواهد کرد با سرد بود مرغ ماهیخوار از دونش زد بیرون چهار تا بچه داشت با دهن باز و پرایی در نیمده و شکم گشنه شما فکر نکنین که اون بالا تو اوج خدا میبیون پای یخ نمیکنه اونجا از زمین ما آدما خیلی سردتر ولی خب اون یه مادره و مجبوره که بره روی سطح دریا پرواز میکرد یه حددید یه کله عذاب اومد بیرون. حتما باز از اون ماهی جوون بود که میخواست جلوی باقی ماهیا بکشه. اون داروبرد چند تا دیگه مرغ ماهیخار بود. از این مرغ ماهیخار پر رو گشنه ها که رفت سرشون نمیشه. ولی خب اون یه مادر بود. مرغ ماهیخار ها هم به نترس بودن. ولی از من بپرسی میگم که اونو از یه سریا خیلی میترسن. اونو از یه مرغ ماهیخار ماده که از قضا مادر چهار تا جوجه دهنگشاد یخصده گشنه هم هست بجور میترسن. این مادر ها توانای برای همین بود که اون روز اون چند تا دیگه موقع ماهی خار خودشون زدن به کری و کوری و انگار که هیچ ماهی خری سرش رو از آب بیرون نیبرده موقع ماهی خار ما که میدونست بعد اون یه دونه ماهی جوون کوچولو، چند تا دیگه هم جرعت میکنن و میان بیرون آروم و خونسد باستن. اون خودش هم میدونست که این موقعیت و مدیون شوربچگی و جوونی این ماهی است، ولی خب اون مجبور بود. آخه یه مادر بود. توی لحظه وقتی که چند تا ماهی جوون سرشون عذاب آورده بودن بیرون مادر قصه ما شیرجه زد ماهیا رو گرفت و اومد نشست روی یه سنگ ولی یهو همه چیز سیاه شد دار در مسیری از تجسم پرواز بود که یک روز پرنده نمایان شد انگار از خطوط سبز تخیل بودند آن برک های تازه که در شهبت نسیم نفس می‌زدند انگار آن شعله بنفش که در ذهن پاک پنجره ها می‌سو چیزی بهجز تصور معصومی از چراغ نبود در کوچه‌باد میآید، این ابتدای ویرانی است آن روز هم که دست های تو ویران شدند باد می آمد ستاره های عزیز، ستاره های مقوائی عزیز وقتی در آسمان دروغ و میگیرد می گیرد دیگر چگونه می شود به سوره های رسولان سرشکست, سرشکست پناه ها ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم می رسیم و انگاه بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد هوا سرد بود ولی خب شکار توی هوای سرد برای اون خیلی مززه میداد چند وقتی بود که داشت فکر میکرد که مجموعه تاکسی در یه چیز کم داره شاید منو شما درکش نکنیم شاید فکر کنیم که طرف روانی و حیوان آزاره حتی شایدم که باشه ولی خب ما نمیتونیم قذبت کنیم اون و موقعیتشو و به تب اعمالشو. این شکارچی قصه ما آدم درس بود پولدار بود خوشگل بود ولی خب یک عاشق روانی کشتن موجودات بیگوناه بود. که مثلا پوستشونو رو و بندازه زیر پاش یا از کلشون سردیست درست کنه یا بدنشونو با زرافت تمام تاکسی درمی چند وقتی بود که داشت فکر می کرد مجموعهش مرغ ماهیخار کم داره همیشه آرزوش بود یه مرغ ماهیخارو رو در حال شکار شکار کنه اون روز صبح زود رو سنگای کنار ساحل پشت یه تخت سنگ ساعتها کمین کرد دید یه ماهی سرش رو عذاب آور بیرد. اخه شکارچی همشون یه دوبین دو چشمی قوی دارن که میتونن فاصله های رو هم واضح ببینن. آخه اصلا شکارچی باید خیلی دقتشون بالا باشه. اون میدونست اون ماهیه بهترین است برای شکار اون. پس لبخند زد و خیلی مصمم و آروم نشست سر جاش. یهو مرغ ماهیخار ماده سرکلش پیدا شد. جالب بود که همه مرغای ماهیخار اون دوروبر بر پرواز کردن رفتن. شکارچی فکر کرد که اونها متوجه وجود اون شدن و در رفتن. ولی مرغ ماهیخار ماده هنوز هم اونجا بود. توی لحظه شیرجه رفت و چند تا ماهی ولای منقار کوچتاش گیر انداخت و اومد نشست روی یه صخره. شکارچی ما هم توی یه لحظه تمام تجربیات تمام این سالاشو جمع کرد توی ماشه تفنگ دلول شکاریشو. بنگ. رفت بالای سر مرد. قلب مغشلولاخ شده بود ولی اشکال نداشت. اون میتونست مرغو ترمیم کنه. گردنشو گرفت انداخ عقب ماشین و زد به جاده. است. من سردم است و انگار هیچ وقت گرم نخواهم شد ای, ای, یار،, یگانه ای یار،, یار ای یگان ترین یار آن شراب, مگر چند, آن شراب مگر چند ساله بود که در اینجا زمان چه وزنی دارد, زمان دارد, زمان دارد, زمان دارد و ماهیان چگونه گوشتهای مرا می جوند. چرا مرا همیشه در ته دریا, در دریا نگاه میداری؟ یک سال بود که شده بود شهردار. همه بهش می توپیدن که تو عرضه ساخت یه جاده رو نده. این جاده رو همون اول شهردار بودنش ساخت که مثلا بگه من یه شهردار داش خوبم. یه شهردار که برای رفاه حال مردمونه، یه جاده خوب می سازه وسط جنگل که راه نصف بشه. ولی خب اون جاده اشکالات زیادی داشت. اون جاده معروف شده بود به جاده این مرگ. حتی بعضیا میگفتن نفرین درخت‌هاست که هر کی میره تو اون جاده به شکل فجیعی تصادف می‌کنه. تو اون روز سخنرانی وقتی همه مردم هو کردن و اعتراض کردن به اون جاده قول داد اگر فقط یک نفر دیگه تو اون جاده مرد سری دستور میده به واستازی اون جاده اصلا دستور میده به کندن و تخریب و کاشتن درخت و واس کردن دوبارهش بچنگه اون روز هوا خیلی سرد بود دریا و جنگل از مشخصات اصلی اون منطقه بودن مرغای ماهیخوار و ماهی‌ها و درخت‌ها و سنجاب‌ها کلی پرنده و چرنده دیگه اونجا توی اون وقت سال هوا خیلی سرد بود یه کادیلک قدیمی که صدای باب دیلن حتی از پنجره‌های بالا کشیده شده پشت توی جاده می اومد به اون پیچ معروف رسید. از شیشه پشت ماشین یه تفنگم معلوم بود. شاید یه محلی بود که تفنگشو با خودش برده بود، شاید هم یه شکارچی بود. حتما مجوز داره. اگه مجوز نداشته باشه که جرأت نمیکنه، اون دلول شکاری خفنشو بذاره پشت ماشین و راحت و آسوده باب دیلن گوش بده و سرخوش روانندگی کنه. اصلا شاید از اون جاده متروک و اومده که کسی نبینتش. شادم زیادی اعتماد کرده به خودش و تفنگش رو اونجا یه یهو ماشین توی یه پیچ تند تادرش از دست داد و چرخید و چرخی رو خورد به یه درخت گنده و همه چی تمام شد. آدمی که توی اون ماشین بود حتما مرده بود. دود و خون همه جا رو سلام ای شب معصول میان پنجره, پنجره و دیدن, و دیدن همیشه, فاصله, همیشه ایست. فاصله ایست چرا نگاه نکردم مانند آن زمان که مردی از کنار مرد درختان که گذر میکرد شناس اومدن مردما جمع شدن همه یه عالم پلاکار آوردن و شهردار مجبور شد با هزینه شخصیش دستور انهدام و بسته شدن اون جاات داره بده. هوا خیلی سرد بود، کارگر کار کار میکردن یکی از کارگران ر وسط جنگل شاید اگر اونجا کار نمی کرد هیچ وقت نمی رفت بسط اون جنگل. اون کارگر مدتها بود که منتظر یه جای خلوت بود یه جای که مثل یک کاتالیزور و یه عامل چهارم کمکش کنه تا خودشو بکشه. هوا سرد بود. دختر کارگر چند وقت دیگه قرار بود از سرطان خون بمیره پول نداشت اون جنگل سرد برفی اون جاده پر از خون و مرگ و اون صدای شاخ و برگای یخ زده کارگر رو با یه تفنگ دلول برد وسط جنگل نشست رو زمین روی دوتا زانوهاش مثل همون روزی که از زنش داشت خاستگاری میکرد حالا زنش رفته بود توفنگ و گذاشت زیر چونش دستشو برد رو ماشه ولی یو چشش خورد به یه جوجه کوچولو که از روی درخت افتاده روی زمین دستش از روی ماشه برداشت و جوجه رو برد گذاشت توی لونش بالای درخت یاد دخترش افتاد و یاد خودش افتاد و یاد همه چیز افتاد و برگشت رو رفت کنه رو بکنیم اگر اون روز اون ماهی کوچولو سرش رو بیرون نمی و اون مرق ماهی خار ماهی نمیگرفت و اون شکاچی مرغو نمیزد و اگر از شدت اعتماد به نفس و روانی بودنش از اون جاده خلبت نمی رفت و اگر شهردار دستور به کندن جاده نمی داد شاید اون کارگر شهرداری هم به فکر خودکشی نمی افتاد اونم وسط جنگل که متوجه یه جوجه کوچیک بشه که افتاده روی زمین و اون و خودشو نجات بیاوریم. ایمان بیاورین ایمان بیاورین به آغاز فصل سرد ایمان بیاورین به ویرانه های های تخیل به داست های واجگون شده بیکار و دانه های زندانی نگاه کن که چه برفی می بارد؟ شاید حقیقت آن دو دست جوان بود آن دو دست جوان که زیر بارش یکریز برف مدفون شد و سال دیگر وقتی بهار با آسمان پشت پنجره هم خوابه می شود و در تنش فوران می کنند فواره های سبز ساقه های سبکبار شکوفه خواهد داد ای یا ای یگانه ترین یا هر اتفاقی ممکنه یه موجزه باشه بدترین اتفاق برای ما ممکنه حلقه ای از یک زنجیر بلند باشه برای تحقق موجزهی برای دیگران بهتر اینجور بگم که برای تحقق موجزه هم نیاز هست به تحقق یک موجزه دیگه برای اینکه مثلا ما به دنیا بیایم یه موجزه لازمه به دنیا اومدن ما باز میشه خودش یه موجزه شاید قیلزت با هم فرق بکنه ولی هست هست که کار. کوچکترین اتفاقا ممکنه با قیر و وسط زندگی یه آدم اونو نجات بدن یا حتی نابود کنن. هر کدوم از ما و اعمالمون ممکن حلقه زنجیره موجزه خوب و یا بد و نابود کننده باشیم برای زندگی دیگر به قول مرحوم جاله اصفهانی زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هر کسی نقمه خود خواد و از صحنه روید. صحنه پیوسته بجاست. ماها هممون شاید اصلا همونطور که بیگانه در دهکده مارک توین گفت یه سری آدم گلی باشیم که یه موجود بزرگتر ساخته و داره باهامون بازی میکنه و اصلا شاید ماها هممون اسب بازی یک موجود فراپوق سوپر زمینی هستیم ولی من ترجیح میدم که یک مجزه باشه اینجا رادیو هجده بنش بود و شما به اپیزودی که خیلی شلخته، و هنریطور سر کرد به مجزه چیه پوشته بود. اینجا رادیو هجده بنب که برای پدر و دوستانش یه مجزه بزرگه موجزات ساختنی هم. بیایم بیاییم و مهربون باشیم و سازنده موجزاتی برای زندگی دیگر تمام یکی چی داشت و به تو سپاد یکی آب روش و سر هیچ بود یکی ماه هر هرچی بود و شکست یکی هم نشست و فقط قصه خود درود شد واسه مثل حرف فراز نمیدونن اینجا جاده انتهاست دیگه یادشون رفته کی هستن نمیدونن این نشته از کجاست نمیدونم این نشته از کجاست از ماست که بر ماست، کم شدیمو پیداست. این نفر تو اندو، از از ماست که بر ماست، این ناش من است. مجنون، از که بر ماست. از ماست که بر کی هم مسیرش بارون رفت؟ عجب حسرتی شد برای همه چرا روزای خوبی از این خونه رفت؟ نشستیم و گفتیم خاست خداست ولی این بهانه است حقیقت کجاست تا کی خود فریبی؟ تقدیر بود حقیقت همینه که تقصیر ماست حقیقت همینه که تقصیر ماست